گوگرانی عزیز سلاوتن لیبید، خوشخالین لبشی دوانزه ایمی خویدنوی کتبی چشتی مجاوری هجاری مکریانی حتی نوالتن فرمون لگل من بن. لباکان دگل حوالانی جه کاف که نام خواه زور ببون هاوکاریم ده کردو، ببری شوا کاس توتن فروشیم ده کرده بو. زور کس لینویا که حزب جه کاف روسان دروس دین کردوا، که خواهب نگری راستی بونه چون که تک حزب بو حوال جر لسابلاغ دامزرم روس هیچ اگهان لینه بو. دمانویست که برسمی بمن نسنو یرمتی من بدن، بلام هرچی کشش من کرد جوابیان ندینه لا اخر دا کدی ته نهزو پیزیک من پیکو نواه اوه ونیشت له دابو نه اندویست امین نبیو نوکه انګلیش بهرمان و ورګریه حزبکتان روایو روايو یممنه تن نبینو یوج لنوسراوی ختاند هواवती امب کن کړه چدوی دو چاवीसاب کور له هم زور ازا پرستو ازا خو شویسته کاتی ک هیتلر لسربو دگل روسیا شريده کرد. همو کس قبله بولیه دو تاریفه انده کرد که عزایو روز خویارن اگرچه هتلر یارد دولات ایرانیشی ده کرده دولات ایرانیش لبرچامان لشیطان خوانطالتر و دزیوتر بوده لبر اوش کلاشر یکم ده کردی مکوریان یارده دولات ترکی مسلمانیان کرده روز زوری کشتبونو زوری بیغسیر برده بو. تنانت 48 ساعت قتل عامی شاری شهر صبلقین کړد وو روسی کافر زور ناخوش ویزبو بلانکام جر له حکمی کومونیستی ده هاتونه ایران بیري خال چن ګوري برلهرشت چون هر شریک در کې زندانین کړد وو زندانی سیاسی او آسیین همو بره لا کړدن ملایک شکاک دی وو از 700 بون مدیر روژک ملایک تک سوري چافشین دري وکرو ګوت ايدي سودا ام همي قطر بون چګدار روس ظلمین لکسنه ده کرد همو کس خوشی دویستن خانه خوازه، من پرست کاروست من به فروشته آزادی کردستان نزنی، باقط قلین چاوی خوان رزمان لیادگرتن. لخوان دوست یه مشکوین بر قانونی اوانوا. راست دوی نویی کمونیست من نزنی. کی من دگرتن بالشویی. و تیجی بون که اولات روز هموی زور آمدنا. لهرجارا کم معلیل من جلگ داشت چش لیدنن. هموکس قابی خود باو لود چشته بودی دگرتن. اتر کس لحیز همکار کیش بدس پیوکه نو وستالینا نه زنم خلک تر چنده نن لمباری و دزانی بل املو کته دا نم دیکس لمبتری ل و زوريش باور رازی و ته خوازبونو لا منواب هر اون آزاد مند کنو د من کنه دولت جا اون دی لتوان دابو به شعر بروسو بلشویک من حل دغو بز بز میمنو هیمن بو که سرو بن يقسمان صلاوت ل دیدار استالینو دعای بخیر بو سرکوتنی بو او دمانه که لطرقه بومو تازه دولت تیک شو بو نشکره که ده کسی بسر کردهاتی سرهنگ پزشکیان ناوک لسردشت هرمو حکمی خویده کرد و تینوه عشایری کوردش نجستیان زورم حولده کچن حوالیکم ده گلبه بلکو لو تالانه تفنگ مندس کهوه کس نه تنانت بگالته دمگو اگر هیچش مندس نکهوه خطوشی پیایواده بین روت منکه با بیکار دانه نشین ا عبدالکریم کوراګوری شیخ محمد خانقه خبری بونردبوم کبر او خلیفانی منګوران به چې منځدګمه سرخوشی له مال علی خان دکم وادیار بو کسی لمن باشتر د زده کوت سیاسی سیاسي بم لرهګه د کتنیا بوم توشي دسته سواره کاتم رګه من لیکیدایو دا سوار تاق بو بروم نحت ګورج داوځي متفقم نه اثر فی وتم میپیش دت و وتی بابا نهه تمشر اوام من له سید کامل کورې سید زمبیل دامو د چې نه خلیفن لو روژو د سید کامل مو معاشنو څن سالن زو دوستین زیبوین عبد الكريم او سید کامل هر دوک راس پیډرابون کمن ګران ساسکن بتنه یریدی حمرشید خان لسقز علی خان او نهتن د ګرانوته عبد الكريم سری سید کاملیش هر هاته به من لا عبد الكريم بردا سید کامل چو مسقز کبا شیخ مامې سید کامل همکارې حمرشید خان لسقزبو همارشید خانی بانهی که آقای وینو داروخانی بشی کردستانی عراق <تصفيق> بو، عشیرتی بانهی دوی خوی دابو، بانهو سردشتی لدست عجم درهی نبو. پج زور شری پالوانانو بناوبانگ بیارمتی بگزاده فیض الله بگی سخزیشی گرتبو، چکو چولی زوری لدولت سندبو، بیتی شری همارشید خان گند با گندو مال با مال دگران. میوان لمالان دادم زرند. سید کامل و دستو پیوندی کمونیشکیگ لوان بوم لمالی حاج علی اکبر نوک دام زرند. نانو خان و خواه سر حاجی. هشتان زور کردن بر جربو کابانی تشق لباز نه تونا مالیو بانی و شود دواکبابی بازاری لناکن. کاری رجانیس سید کامل هر قابو. لذی حوارن بودن کریان لسانون. روتین کردون تکای بودنوسین. خان حاشید کردو. دیخستم لی پیوی سلیم خانی. 2. سلیم خان دی خستمل پیوی خان ل درگاه جو را کردزینی کدر زین سقز یکان به مثال هر بینادید به بیتا استقلال بین شکوالیان بکن حاشا زوم موفقته به رشید پاشا بانی دین خنده او پی دکنی دمان یک لسقز زراوی سقزیان و افیر بوب فرق من پی نه دکره لو ماوی دا خان هر شی بر د سر هي زي عجم ل دیوان دره اشعری دورو بری سقزو احمد اغه حاجی بای سقشی د گلبون اشیرت گلباخی بونه پی لو شردا لشکری خان زور پیس چکاو چن کوجره او اسی وی دا بدیل ګرتبو ل سقز کوشتنی نافع مسهری شاعر قصیدې کی بو ه ی ګتبو کی شک چن بهیت نبی لبيرم نموعه درباری کرده خائن کانو دلیه دزی خانه ی واجب کشتن لبو عبادی غیرخوین رشتنه یعنی دلیه چه خوشکه یک سانیا بیت شیر نه وقت دو هزار ساله بدنیان جیر چشیرین شاعر کانجا میکار لسرپاسیم قومه بدن لدار تفنگ کم پیانز تیره کی زخربو زرب آوات بوم تفنگی برنامه بی بلند دست نداری بیکرم شعر یکم با حماراشید گوتم جایزت فنگم نداتی، بلام کس هر نیخوینده و لوموی دا لو سید کامل رویشت کسری ملبداته و لگر دیگلانو من بتمایحات حت نوی لسا قزمه موا بلام که او زوری پیچون حتوا لما گست موا بو خانه چی کرن شوی گل کابره قرارمنده کپیک و بروینه ولد یوارسی برشور ببون لشار درچوین کابره سی خزمی خوای دگل بو زودی گیشتم کتوشی بلایگ دیمو اوانکاریان دزیو خلق رود کردینا. زور به خوپارزی لدو و دروشتمو تفنگم لسر پیو آماده روداو بوم. نجیشوانی که درنگ؟ لدوری گوندی قروای سقز همدیک رشولاغو کری با جلو دلوارن. هاو رکم دگل خزمکانی درگای کونه قاوخانی کن لسر کرکنده بستو جویل کو پانی رکنیان پیش خوداو دزیان. زود دو نکات بودن خالقیده کوت نشون ماند من کدام ویست لاچنگ او پیو خراپه نه رزگار بم و تمیه وبرون من ليره پیش بو هاوارچيانه دگرم. اوان رويشت نومنيان بجههش هاوارچکان دوه چن ګل ته قان دن او ساسوار بومو بیر ريګا ملمنا توشي جوګه اوي شي زلبوم ويستم بازدم حيم لماینه کم کرد بازیدا دا بلان تنگی زين پساو کوت مناور راستي قرولي ته جوګه هر چونک بو هات مدرو چرای کم له کردو هاوارم کرد دیار بخال کی دیده ترسان آخری دو کس بتفنگوه هاتن کزنانیان جاترس نیم منو زینی قرایومایی عراقی شو بردن ممالک خم شست و کابلت چای بولی نامو حساموا کباستی خم بج بلایو سیر بو و تو آهاریت کنایی بو با دو کران پیوکی کشتو سیر تو نجاتت بو رنگال ترسید کامل نیو رابی باتکوچو ماینو تفنگد بره. پتر لسی سال بسر او رو داو دا رابردو بو. روشدک چوم خزمتی بارزانی. صوفی علی نایوک زور بگرمی احوالی دا بارزانی فرموی لکن جاو هجار دا ناسی. قربان لو ساوک او کری لدوری سخص دا دزی. چی رو ککم با بارزانی وا. رایو. فرموی دیویس خلقی کری شد دزی و. کومل جاکاف دیویز خلقی شر به ترسینه. شوتقیان لح ایساز دنایک زمانی پهلوی شیطانی ل خلق دکرد و زبیحی و فاروقی بگرتن داو خبری ل منو ملا حمدامینی حدادی دابو ل دست دولاط حالات بوینو خمان شهر بوآ ب امر حزبکتابخانه که تالات کر ترسولر ذکی زور کوتب و ناو خالقی شارو ل دوچمنی نادیاری دترسان ورد ورد هر دوچمن کم دبونو دوست زور وایلهات کداستالاتی کمالا ل شهری ساب لغده تاوی پریسند بو اوی خوشیشی ندویست لیده ترسه. جاریک خبریانده که دولمندی شاری حزب خویان لده جی اما دروز دکنو فلانه شو لمزگو سید نظام کودب قرار دره لیان تیگدین. بلام نجده بو بناسرین. حسین سروکمن پاشکی شوهره زور او ارکی خصه سرشانی خوی کوانکا بیناسینو لیشان تیگده. بدلی که گوالاو دمحال پیسره و لمزگو چوب و جورو دمانچاکی دره وا وا لیکراوینه روح بو شدمن او حمودولمنده قلاوانا و جندوکی بسم الله لیکراو هر اوندایمو کرابو له پنجره و بازنو خود رباسکن پتر صد جوتا کوشی زرباش انوے بچی مالا قاضيان زرلميجا و قاضيو دا سلات داري شارو بناوبانگ بون قاضي فتحه كانه بو که لأزاعتیو بجرگیدان ناوبانگی در کردوهو لشار عروسان کجراوا قاضي علیش ک قاضي سابلاغ بوا لپیاوه هر برزکانی غلاد ولاد روا دو كوري لپاش بجمعوا میرزا محمد کپیوی کی زور خویندور بوو لا زماني باوچيدا چندين اركي به حقوقی وک مدیر عارفو سرپرشتي شیرو خورشیدی سوري گرتو تاستو زور خو اولاد بوو لا پاش باوچي کراوه تا قاضي صبلاغ مرزا قاسم با صدر الاسلام نو براه و لدزگیروه دموانو تکا با زندانیانی بیچاره دا زوری کوشش کردو و با پیویچک نسره و لزمانی کماله دا با تا نایب لاتارن داگل تکچونی دا صلاحاتی دولاد لمکلیان قاضی با پرستن شر لطالانو بروی دوربر دوروبر خالکی سبلاغی سازدابو کتفان بکرنو شوانه کشکی شر بگرن زورجاری شروژانه کوی دکردن و اموشگری دکردن در سلاتی سابلاغی تاولد استابو، پیمان خوش بو قاضی ببیت هاو کرمن بلام او ایمی بهیج ندزانی و بلایوه که مایسی بو کدگل چندرش و روتی که بیناو نیشان زرمزلی تنبکه امش هست مندکرد ک عشایر و خلکی دکی سرناز چتونه حتی نزد نصرت رکمان پیروی کرد و حرمت گرتن بین بیان کلمان هیچ کسی پی بزرگ به حسین رازی ندا بو، قاضی چون شرب کن. رامندس پردا اندام آن کلا کوبنو باو تری قاضی بتنوا. توالی که قاضی خوی هستی با و کرده بو حزب هیزو گالتی پی نکری. او سادومن لیکرد که بیت حزب وا. قبول کرد و زورجو بریار درا قاضی سروکی کمال ایتر زورل آقاو پیو ما قولان که بچوکی قاضیان پی شرم نبو هتن یاری منو هتن نو حزبوا. قاضی که مالکی قناقی میوانانی روز بو توانی نوان حزب روسان خوشترکو دامن توانی براشکویتر کربکن. دولتی ایران که لامکوریان پاشکشی پیکره بو اداره مکوریانی لامیندو او دانه بو. به همو توانا حولی دادا آقایانی ولاد لخوی دلخوش بکا. شکر و قندی زوری دادانی پلی حکمتی شاری به عشیره‌ان دست بر دشمنی سرسختی و رجگرمان قرنیعای مامشو علیعای ال خانی بون قرنیعای ز به حیگرتو حرشه کشتنی لکرد روز برینداو حرشیان لا قرنیاغا کرد باسی علیعای او پیاوکی. و کی سلیم عای دنیا آشیاری بو حزب کامله یک نبو با سردن حمدامین حدادی چوبو ما کنی رج چوما دست لکو نی دیواری عود است و دیتم علیا غای الخانی دجال کبری کهتن و پالنداب دیواروا که لو لودیو جمله قصی اندابو علیا غاو زور سلام لب عبکری سلیما غاب که بلی علی دیگون نکه دغیلی بم فریی هتیو متیوان بخوا و کرد عاتیو شتیو آب اگر اما او کار بکن عقایتی ما نداز دشی. جاریک روسان زور پیاو مقول ولاتیان با باکویا بانکرد که علی اغاو قرانی اغاو حاجی وابا شیخو زور اغای تریش لو بانکره اوانه بون که حت نو بیست من بغرافی سروکی وزیر ازربایجان روسیا و تبوی چیتندوی تن پیک بینین یک دلیر شکر یک دلیر زینی روسی دمان شا. من دمتقی کم لسر نوسین و لنشتی دا چاب کرا تیرم گلتب اقلان کرده بو. الیاغه را شکل کړل بو ک او شاعر هر د کجم باوي کی زور نم د ويره بګندي او دا پرمو رګم بو شاعر صاحب لاغ ګوریمو روسان چک درن کړدون هزي پښمرګه مشرق به پښمرګه د کرا او توا بو شاينه رسول نه وګدا نردرم کمل خلیل ګورمر بکینه لاګری شورش بل هر چی شعر او رويمن بو هینایو ملي نه دا دیګو پیاو کافر دکو بیستو ماک لسر غیابان رجا درون پاش چک و سویندی زور رازی من کرد با قرآن سویندی با خواردین که یاریده من بکن و هرگیز خیانت من پیانکه بلا مزور زو خیانتی پی دینو و و بر پیدا بشایر ناوم زرابو لسر دعوی روابط فرهنجی ایرانو روس بخوش شعرکانمو چومتوریز قرار در باشم چاب کن و ترجمهشی بزمان ازربای زنی بکن گوتیان لعوتیلکی خوش داد دمزرینیو چاودیر دبین کپیای ایران زیان یکت نگیانن قبول نکرد چو ما عوتیلکی کلا سعی دن خوشی هم زوا ببومهواری خواننکی جوری که بتنیاد دامیو رجه ساعت هشت چو ملای جعفر خندن شاعری مشهوری آذربایجانیو ترجمه شعر کنم به فارسی بده بردو اوج دیکردن شعری آذری علاقویان بخور دیل چاب دا ترجمه شی بنایی لایلای ویسیان پاری او شعرانه بدنی نمویستوتم دیاریمن به بوروسیه چنشته کی سنجراکه شم لو سفر د لبیرماوه لترجمه شعر کانم دا ک گئیما او بیتی دلم به هزار وزنی هزار شعری دغو گئیبو و رزی هزار او پوشکین جعفر خندان پرسی پوشکین دناسی کتم هر امنده د سنم شاعرغو وتی کورنم تویش تام نالی شنازیش به شعر خود دکی ل کورجکه د بوتساب دکین بالام ترجمه نکین پوشکین زور پای و پای بیرسترا خمانی بین بینریزی زور به خودش کما روزیک اک اکسی کی منن به ترجمه شعر کول روزنامی و تن یوم ددا چاپ کردم او اندم ساز احساس بو هر نبیته و پتر لا صد جمار روزنامکم کری و نرد مواب کانو صابلغ ل نظریه ترجمه شعر کانم پروژه ده چوم دستکچیکم فیري سرودی کردید کن او سرودی ک جارجر ل یک لوانه بو جگله وطن یونده اکس و ترجمه شعرم لکوملانوسراویگ بناوی کور شعران ده چاب کرا بو ایتر بکل گویزم دشکن هرکی جهکی لوانه سر با اداره فرهنگی روسان بون کلی ده پرسیم توکی گرژه عکس و شعری چاب کراویم دنه بردمی لبیر مراجیک جعفروف نویگ لروابطی فرهنگی وطی بز مکوبونویا خود که هیچ کارتی دوستانی شد وگره بانگین که. وتم تم کارت یکم بو قاسم آقا دیا و تی آقا و تم زور پیایو چاکو دگل خو مانا و کرم مار مارا سپیو برو زرد و سوری نیا لرونجگاری کومالا دا زور شعرم نوسیون که هندی کن لالا کوک دا کوک راو نوا پتر لدو هزار بیتی بختمایو روناکاییان ندید و جاری دو هم قاضی دگل چن کسیگ دا چون باکو یعن پرسی بو چون شعرانتان دگل خود نهی نوا یم زور من رأزی شاعران لبره، اماش زور بو مایدل خوشی من منو هیمنو، خازیش نزد نویش شاعری ملی له هر نا. نه. تاحز بناوی جکاب بو اندامانی نهنو، کسل نزبون، هموکس باشی که زور به قدر و لیدر وانی، وایله هات بو هیس لایک باشی هر زکاریا و لیچ کی جکینه در وانی. درو درو دزبرین بیگجاری با باری کرد بو. لالی اگر زیانیک بکرای، اگر گلیسو آم رازیکون بوایا. قد کی شیل سر حل نه دایسه او گومبویان دداوه بخاوني خلک له سخر معنا نه دنوستان کدی کس دزیان زیان لینا که جولاو چنشوان شوان شو بکیو دبون بو ریواس یا چریش کس دل پیسی لا کس نه جاریک لا میوان بو مو خلی بوم برم لو دمدا دسته مرید هاتن سید گوتیر راوس قسم هيا صوفی کی پیر دستی ماسکل سید لیپرسی صوفی توج بویا کوملا اوتی قربان خوابن سیب من که خواب من دستی با پیرتم جلو کردو بو بابد. توم و بو ممروزی بابت استش مروزی توهم قطنم دست لخرب کاری دزی برن داده ولم لسای که ملواها مخرب یک مولاناوا. زمان زمانی محمد مهدیا خوم لایک بوم لتمانی بسته دو سالی ده دقل برادری که حزبی بنای عبدالقادر دباغی رام دبورد زور جار دچم مالیانو دقل عبدالقادرو خوش کانی بی تقریب ما مند یک پیوتم خوشی خود دگل آو خشک جوانانی د باقی دا که ایدکایی باور که توان گود نم زنی خشک جوانان یا ناشرین لوسا و ترکی مالا د باقیم کردو هر چی کردیان نچمawa نه وقت بچه بی خیانت بروان ما خوشکی برای حزبیم حزبی تودا کسر بر رسانو لیران دا زور به حزبون نه انتوانیبو ل مکریان خویدیار بدا رج قاضی ل توریزگر او کوی کردیان اوتی قلیاف گتویا تودا هیچ حزبی قبول نکن. ده خو به خود ان حل کنو، ببین تو دا دنن آشنایی بتن کوچین یا و درنچی. زور زو من دوکه ام با خم ان امرعیمن حل جردو. روز آگان ل استاش هر لسری دروینو چیان نداز ده منتیان نبا. خازیوتی خواش کر. لایو کرد وک میشگوان، تابیان سیوا بونیان خوشتر دبا. جابا کیبر دو با تولیزو گره و گوی. لو بتر سانو قلیوف گتویا تو دا چجویک دخوا. یا هروه خودتان بن قاضی و حوالانی که دو هم سفری باکو گرانو رایان گین لناوی جیکاف رازی چونکه چون که حزبی که با آزادی همو کردستان تیدکوشی و انگلیس و ترکان توردکا دبینای خومن بنین حزب دیموکراتی کردستانو داوی خودمختاری لی ایران مکین زور من او خبره لبرگران هاد بلا هم چار چیا؟ خبول کرا منیستاش نم توانی ناوی جیکاف لخوم دور کمو کارت حزبی بلان چالا که نو حزب کرتم نهی نا. حزب دیموکرات لسردار و پردوی جکاف دامز رای و بلان او جر به عشق را کاریده کرد ایتر او حیبتو ناوی پاکی که جکاف دا هبو چون که نیبو زوری لکورتی دا اندامی فیالبازو بر خوازی زوری تیاد زوری نبرزانی من که خاسم آقای ایلخانی که برای که حزب زرخ و بو لپاش گرانوی لباکو چوت باشگاه افسرانی توریزو بوین بو تجاسوز بسر حزبا و او یکمین دوی خیاند بو که دنو قومه ایتر شیرازه تنظیمو تکوزی پیش و حلوشو و و عشنایتی و خواب خواییتی کوت نو منو حیلوی زرنگ بیو خوی و پیشخواه خیانت خوش بون و نمانی زبر و زنگی زمانی ترسنده نشکاو زور کسی شیل کرد که خیانتش و هر لنومان بمین نوا ایران و غیر ایران در انتوانی نوکرانی خوین من در نوخزیننن، درگاه حزب، کراب و او هرکس دهات بیلکور نوا قبول دکره، قسم آقا هر ببرا مای او زور لاغیانی دیش هات نوا نومانو با دل لگال دو بون گرانی عزیز بشی دوانزهیم لخون نوک تیبی چشتیم مجاوری هجاری مکریانی من پیشکش کردن تا بشکیتر و شبکیتر شدو من بن.